دوستی را که به عمری فراچنگارند، نشاید که به یکدم بیازارند. سنگی به چند سال شبد لعل پارهای زنها تا به یک نفسش نشکنی به سنگ. عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاجز با زن کربوز، رأی بی قوت مکروفوسون است و قوت بی رأی جهل و جنون، تمیز باید و تدبیر و عقل آنگه ملک که ملک و دولت ناردان سلاح جنگ خداست.